گوینده فریده هامد درود بر دوستان عزیز و همراهان داستان شاهنامه فردوسی با ادامه داستان هفت خان رستم در خدمت شما هستیم در برنامه قبلی خانهای اول تا سوم رو با هم شنیدیم و امشب قصد داریم ادامه خانهای چهارم تا هفتم رستم رو براتون تعریف کنیم با ما همراه باشیم خانه چهارم زن جادو بعد از گذشتن از مراحل قبلی و کشتن اژدها رستم همچنان به راه خودش ادامه میده تا اینکه به چشمه ساری میرسه پر از گل و گیاه و بسیار جای زیبا و فرح بخشی در کنار اون چشمه سفری گسترده و برهای بریان و با کلی خوراکی های خوشمزه میبینه و جامی زرین پر از باده ناب در کنار اون سفره. رستم خوشحال میشه و بیخبر از اینکه این سفره این رو دیوها اونجا چیدن بر سر سفره مینشینه و اول از همه با اون جام باده لبیتر میکنه سازی رو در کنار سفره و در کنار جام میبینه اونو بر میداره و شروع میکنه به نقم سرائی و برای خودش ساز زدن و آواز خوندن. مدتی که از ساز زدن و آواز رستم میگذره پیرزن جادو خودش رو به شکل زنی جوان و زیبا در میاره و به سمت رستم حرکت میکنه رستم که در اون دشت و راه طولانی که اومده بود بسیار خسته بود و حالا هم در یک جای بسیار خوش آب و هوا و سفرهای پر ناز و نعمت نشسته از دیدن زنی به اون زیبایی خوشحال میشه و یزدان پاک رو سپاس میگه به خاطر این همه نعمتهایی که براش فرستاده اما به محض اینکه رستم نام یزدان رو بر زبونش جاری میکنه زن چهرش دگرگون میشه و جادویی که کرده بود و خودش رو به شکل زنی زیبا و جوان در آورده بود باطل میشه و به همون شکل اهریمنی و زشت و سیاه خودش تبدیل میشه رستم دردم میفهمه که این یک جادوه و جایی که اون نشسته دامیه که این زن جادو براش پهن کرده زن جادوگر میخواد فرار کنه اما رستم کمندش رو باز میکنه و اون رو پرت میکنه و زن جادوگر رو دستگیر میکنه و بلافاصله خنجرش رو از کمر در میاره و اون زن جادوگر رو از وسط به دونیم میکنه و اینجا میبینیم که باز هم یزدان پاک نگهدار و پشتیبان رستم افسانهای ماست و همین که اون با خلوص نیت و حضور قلب نام یزدان پاک رو به لب میاره تلسم جادوگر پیر باطل میشه و اون زن زیبا چهره واقعی و زشت خودش رو به رستم نشون میده رستم دوباره بار سفر میبنده و با رخش راه مازندران رو در پیش میگیره خانه پنجم جنگ با اولاد مرزبان در خانه پنجم رستم که مسیرش رو به سمت مازندران ادامه میداد به کنار رودی پر آب میرسه و در اونجا برای استراحت بستری پهن میکنه و به خواب میره و رخش هم در چمنزار به چرا مشغول میشه دشت بان اون منطقه از اینکه میبینه اسبی بدون اجازه اون وارد چمنزارش شده و داره چرا میکنه خشمگین میشه و به سمت رستم حمله میکنه و در خواب زربه ای به اون میزنه رستم سراسیمه از خواب بیدار میشه و میبینه که یک دشتبان گردن کلفت به اون زربه ای زده از جا برمیخیزه و بلافاصله دو گوش دشتبان رو در دست میگیره و با یک حرکت جفت گوشهای دشتبان رو میکنه دشتبان با گوش های خونالود به سمت پهلوان آن اون ناهیه که مردی بود به نام اولاد و با سپاهیانش در اون نزدیکی اتراق کرده بود میره و شکایت میکنه که مردی به این شکل اومده از در چراگاه داره میچره و وقتی من بهش معترض شدم گوش من از جا کنده اولاد هم با سپاهیانش به سمت رستم میرن رستم با یک حمله به سمت سپاه اولاد همه رو تارمار میکنه و در همین حین اولاد رو هم اسیر میکنه بعد هم به اون میگه اگه محل دیو سفید رو به من نشون بدی تو رو پادشاه مازندران خواهم کرد و اگر این کار رو نکنی و بخوای کلک و حقی سوار کنی جون تو میگیرم اولاد هم با شناختن رستم و دیدن زور بازو و قدرت و مردانگی اون به حرفش اعتماد میکنه و قبول میکنه که محل اختفا یا محل سکونت دیو سپید رو به رستم نشون بده و پیشاپیش رخش روستم به راه میفته تا اونها رو راهنمایی کنه. خونش شوم رستم جنگ با رنج دیو رستم اولاد به کوه اسپروز که به مازندرانی یعنی نکسفید محلی که قلمرو دیو سپید بود و کاووز شاه رو در اونجا اسیر کرده بود و به بند کشیده بود میرسن نیمه ای از شب گذشته بود و از سمت مازندران خروش بر و هر گوشه شمعی روشن شد و آتشی افروخته شد رستم از اولاد پرسید اونجا که از چپ و راست آتیش روشن شده کجاست؟ اولاد گفت اونجا آغاز کشور مازندران و دیوان نگهبان در اونجا جای دارند و اونجا که درختی سر به آسمان کشیده خیمه یک ارژنگ دیو در اونجا هست رست هم شب رو در همون نزدیکی میخواب و صبح روز بعد اولاد رو که با تناوی به درخت بسته بوده همونجا رها میکنه تا به جنگ ارژنگ دیو بره. وقتی به محل ارژنگ میرسه با حمله ای سری و قبل از اینکه ارژنگ بتونه حرکتی بکنه با یک ضربه شمشیر سر ارژنگ را از تن جدا میکنه. در نتیجه سپاهیان ارژنگ دیو هم از ترس و حراس پراکنده میشن. بعد از کشته شدن ارژنگ رستم و اولاد به سمت شهری که کاووس و سپاهیانش رو در اونجا به بند کشیدن حرکت میکنه و در اونجا اونها رو از بند آزاد میکنه. کاووس از زیدن رستم بسیار خوشحال میشه و محل دیو سپید رو به اون نشون میده. رستم اولاد به سمت قاری که محل زندگی دیو سپید بود به راه میفتند تا رستم که عادت نداره هیچ کاری رو نیمه تموم بذاره بعد از آزاد کردن کاووس شاه و سپاهیانش باید به حساب این دیو سپید برسه رستم و اولاد دوباره به راه می افتند و به هفت کوه که غار محل زندگی دیو سپید درون بوده میرسن در نزدیکی غار شب رو سپری میکنن. صبح روز بعد رستم دوباره دست و پای اولاد رو میبنده. و به سمت دیوهایی که نگهبان قار بودن حمله ور میشوه و سپس وارد قار تاریک میشه در قار با دیو سپید مواجه میشه که مانند کوهی به خواب رفته دیو سپید با سنگ آسیاب و کلاخود و زره آهنی به جنگ رستم میره رستم در حین نبرد یک پا و یک ران از بدن دیو سپید رو جدا میکنه. با این حال دیو با همون وضعیت با رستم گلاویز میشه و نبرد طولانی بین اون دو در میگیره. گاه اوقات رستم و گاه دیو در این نبرد برتری به دست میارند. در پایان رستم با خنجرش دل دیو رو پاره میکنه و جگر اون رو از بدنش بیرون میاره. باری دیوها با دیدن این صحنه فرار میکنند اینو یادمون رفع اشاره کنیم که با جادوی دیو سپید چشمان کاووس و سپاهیان ایران همگی نابینا شده بود و اونها هیچ چیز رو نمیتونستند ببینن رستم بعد از کشتن دیو سپید با چکاندن خون دیو در چشمان کاووس و سپاهیان بینایی اونها رو بهشون برمیگردونه و تلسم دیو سپید رو باطل میکنه به این ترتیب کاووز شاه این پادشاه سبکسر یک بار دیگه با کمک رستم بر اوضا مسلط میشه و از چنگ دیو سپید خلاص میشه و به مقر پادشاهی یا پایتخت ایران برمیگرده خب دوستان هفتخان رستم به پایان رسید امیدوارم از شنیدن این هفتخان که به صورت خلاصه و خیلی موجز تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید امیدوارم با مطالعه کتاب شاهنامه فردوسی داستان مفصل هفتخان رستم و سایر داستان زیبا و پند آموز اون رو بخونید و از اون لذت ببرید تا برنامه دیگر و داستانی دیگر از شاهنامه فردوسی همه شما رو به خدای مهربان می سپارم. روز روزگارتون بکام.